گرامیان درود بر شما فایل آوایی 13 از کتاب برهان الیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نونفخر رو با هم آغاز میکنیم صفحه 130 عنوان هفته 12 جبر و اختیار آیا در فیزیک کوانتوم راه حلی برای فرار از جبر وجود دارد مومن هفته پیش من کمی عجله داشتم و نتوانستم پاسخ تو را بدهم. احتمالا تو هم اینجا را با احساس پیروزی ترک کردی. اگر اینطور است، باید بگویم زهی خیال باطل. نا خندید و گفت: تا پیروزی را در چه بدانم؟ مومن یادت هست که از یافته‌های فیزیک کوانتوم برای بیاعتبار کردن برهان اثبات وجود روح استفاده کردی ناباور بله کاملا مؤمن حالا نوبت من است تا از ابهامی که در یافته‌های فیزیک کوانتوم وجود دارد بر علیه جبر مطلق استفاده کنم همانطور که گفتی ما از ماهیت ماده و هستی خبر نداریم. شاید در سطح کوانتومی اتفاقاتی بیفتد که بتواند قضیه جبر و اختیار را به گونه‌ای دیگر توضیح دهد. البته من اطلاعات کاملی در این زمینه ندارم. اما همینقدر می‌دانم که بعضی از فلاسفه و فیزیکدانان تشخیص دادند که ممکن است فیزیک کوانتوم راه حل آزادی اختیار را در خود داشته باشد. ناباور تو در ابتدای بحث گفتی که موضوع علیت هستی و نیستی است نه کیفیت گفتی هر چیزی که عنوان چیز را به خود بگیرد هست است و غیر آن عدم است و عدم هم در واقع نیست و لذا ما فقط از هست میتوانیم صحبت کنیم تو گفتی هر چیزی که پدیده باشد فارغ از اینکه چه کیفیتی داشته باشد تنها و تنها پدید بودنش آن را محتاج وجود یک علت می کند. تو گفتی که کیفیت پدیده هیچ تأثیری بر نیاز آن پدیده به وجود علت ندارد و آن را از علت بی نیاز نمی کند. در سطح کوانتومی علیت برقرار نیست. معنی آن این است که ظاهراً در سطح کوانتومی پدیده‌های قبلی علت پدیده های بعدی نیستند. این برای تو یعنی برای کسی که تحت هر شرایطی به علیت معتقد است معنیش چنین است. درست است که پدیده الف معلول پدیده قبل از خود نیست ولی به هر حال باید علتی داشته باشد. پس یا علت آن پدیده است، غیر از پدیده قبلیش و یا علت آن مستقیما همان واجب الوجود است. یعنی این واجب وجود پدیده ها را در سطح کوانتومی یک به یک و پشت سر هم و به کردار انیمیشن ساز خلق می کنند. همین موجب می شود که ما در سطح کوانتومی ظاهرا هیچ ارتباط علی بین دو پدیده پی در پی نبینیم. امیال و اراده های ما اگر هم تابع این چنین خلقت انیمیشن گونه ای باشند، باز هم مخلوق مستقیم با وجود خواهند بود و باز هم داستان جبر در مورد آنها جاری است این مورد را قبلا هم بررسی کردیم مومن شاید تو راست بگویی اما من تا وقتی که نفهمم در سطح کوانتومی چه اتفاقی نمی نمیتوانم مطمئن شوم راز آزادی اختیار انسان در سطح کوانتومی نهفته نباشد مخصوصاً که شنیدم بعضی از فلاسفه و دانشمندان بعد از آگاهی از آنچه در سطح کوانتومی میگذرد به این فکر افتادند که شاید همین وقایه کوانتومی نشان دهد ما آزادی اخیار داریم پس بهتر است این مسئله شکافته شود پاورقی آرتور ادینگتون در سال 1933 گفت دیترمینیسم کلاً از قوانین فیزیک حذف شده است هر دیدگاهی که روی زمینه های فلسفی در مورد اختیار برگزینیم نمیتوانیم علیه آن به فیزیک متوسل شویم. برتران راسل در 1927 در کتاب تحلیل ماده چنین گفت: تا آنجا که نظریه کوانتوم در زمان حال میتواند بگوید اتم ها نیز ممکن است اراده آزاد داشته باشند، اما به یکی از چندین انتخاب محدود باشند. اما راسل به زودی از این عقیده برگشت و در اردو تردید کرد او در کتاب مذهب و علم نوشت ممکن است به نظر برسد که من در فصل حاضر مرتکب این ناسازگاری شدهام که در ابتدا بر ضد ڈیٹرمنزم استدلال کرده ام و سپس بر ضد اختیار اما در واقع هر دوی اینها تزهای متافیزیکی هستند که از حد تایید تجربی فراترند کاوش برای قوانین علی چنان که دیدیم جوهره علم است و بنابراین از لحاظ عملی یک طالب علم باید همواره دیترمینیسم را به عنوان یک فرض کارآمد بپذیرد اما مجبور نیست که بگوید قوانین علی هستند مگر آنکه عملاً آنها را یافته باشد و در واقع عاقلانه نیست که چنین کند اما تر این است که اظهار کند به طور محقق میداند که در یک حوزه قوانین علی کارگر نیستند این حکم هم از لحاظ نظری نابخردانه است و هم از لحاظ عملی از لحاظ نظری چون دانش ما هیچ وقت به اندازه کافی نیست که مجوز چنین اظهار نظری باشد از لحاظ عملی دلیلش این است که اعتقاد به اینکه قوانین علی در یک حوزه کارگر نیستند رقابت به کاهش را از بین میبرد و ممکن است از کشف قوانین جلوگیری کند این دو جنبه نابخردانه به نظر من هم به آنهایی مربوط میشود که میگویند تغییر در اتمها کاملاً تعین یا دیترمینیستی نیست و هم به آنهایی که کوتح فکرانه به اختیار رعی می دهند. در رویاروی روی با این جزمیت متقابل، علم باید همواره تجربی بماند و بیش از آنچه که شواهد عملی تجویزی کنند، نه اثباتی بکند و نه انکاری. از کتاب تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیک دانان دکتر محیه گلشنی چاپ دوم صفحه 225 تا 2229. ادامه مطلب، ناباور. یعنی فکر میکنی امکان داشته باشد باجب الوجود در مورد پدیده های کوانتومی نه به عنوان سرسلسله علت ها و نه به عنوان انیمیشنس دخالتی در خلقت نداشته باشد. بسیار خوب. پس اعتراف میکنی که بدون باجب الوجود هم خلق شدن پدیده ها ممکن است. مؤمن من نمیگویم چیزی میتواند خارج از این دو حالت صورت گیرد. فقط میخواهم بدانم آیا ممکن است در سطح کوانتومی اتفاقی بیفتد که به شکلی مسئله جبر و اختیار را حل کند؟ ظاهراً حق به جانب توست، اما شاید راه حلی در جایی نهفته باشد که ما به آن بیتوجه بوده باشیم. ناباور. اگر یادت باشد، در آزمایش عبور الکترون از دو شکاف، متوجه شدیم ظواهر امر حکایت از این دارد که گویا جسمی همچون الکترون به آن صورت که تا کنون تصور میکرده این وجود ندارد. گویا جسمی با حجم مشخص و مکان مشخص و سرعت مشخص که به سوی نقطه مشخصی حرکت میکند. و همچون یک گلوله ساشمعی عمل می در کار نیست بلکه انگار موجی از احتمال وجود یک الکترون در تمام فضا حرکت میکند. این موج از هر دو شکاف عبور میکند و دو موج ایجاد می کند و این دو موج با هم تداخل می‌نمایند در نقاط یکدیگر را تقویت نموده و در نقاط یکدیگر را حذف می‌کنند این چنین مشخص می‌کنند که در کدام نقاط از صفحه دیتکتور احتمال برخورد و خودنمایی الکترون بیشتر باشد و در چه نقاطی احتمال خودنمایی الکترون کمتر باشد و یا اصلا وجود نداشته باشد ممن، آیا ممکن نیست که یک تک الکترون در بیش از یک نقطه خودش را ظاهر کند؟ به هر حال احتمال حضور الکترون در نقاط بیشماری وجود دارد. یعنی احتمال حضور الکترون در نقاط بیشماری بیش از صفر است. چرا نباید الکترون در بیش از یک نقطه ظاهر شود؟ به همان شکلی که امواج آب در بیش از یک نقطه به دیواری مقابل دو شکاف برخورد می ناباور. گویا به طریقی نامشخص الکترون از بین این همه نقطه که ممکن است خودش را در آنها نشان دهد باید یکی را انتخاب کند گاهی نقاط با احتمال کم برخورد را انتخاب میکند اما بیشتر مواقع نقاط با احتمال زیاد برخورد را انتخاب میکند به محض اینکه الکترون یک نقطه برای پدیدار شدن را انتخاب کند دیگر در بقیه نقاط ظاهر نخواهد شد هر موج دارای طول موج، بسامد، سرعت و دامنه است. دامنه موج یا همان ارتفاعی که امواج آب در مثال تو داشتند بر حسب زمان و مکان تغییر می کند و تابع موج تابعی است که تغییرات دامنه را بر حسب زمان و مکان میدهد. آیا این امواج احتمال هم این خصوصیات مذکور را دارند؟ ناباور معادله موج شرودینگر تابعی است که دامنه یا بزرگی احتمال حضور ماده را بر حسب تغییرات زمان و مکان مشخص می‌کند. این معادله به خوبی پدیده های کوانتومی را توضیح میدهد و به دقت آنها را پیشبینی می‌کند. مومن، ببینم آیا فقط برای ما مشخص نیست که الکترون کجا نمایان میشود یا ذاتاً مشخص نیست که الکترون کجا خودش را نشان میدهد. منظورم این است که آیا عدم قطعیت در مکان الکترون محصول عدم توان ما در پیشبینی مکان الکترون است و اصولا ما از امواج احتمال برای راحتی توضیح این پدیده ها و پیشبینی حضور الکترون آن هم با یک تقریب آماری استفاده می‌کنیم یا واقعا چیزی به عنوان احتمال حضور ماده وجود دارد که در فضا موج میزند ناباور اگر طرح تداخلی امواج مشاهده نمیشد شاید میشد بیشتر متمایل بود به اینکه این ما هستیم که نمی توانیم مکان الکترون را پیش بینی کنیم و هیچ موجی از احتمال در عالم واقع وجود ندارد. اما اینکه یک طرح تداخلی می بینیم ما را به باور اینکه واقعا موجی از احتمال در عالم واقعیت وجود دارد. که حتی طرح تداخل را هم ایجاد می کند، سوخ می دهد. در مجموع نمی توان با اطمینان گفت که داستان از چه قرار است. مومن چرا بعضی فلاسف فکر کردن این مشاهدات کوانتومی ممکن است از مسئله آزادی و اختیار را توضیح دهد؟ ناباور من فکر می که قضیه برمیگردد به تاریخ بحث جبر خیار. عنوان جبر تقدیری، جبر تعیینی، جبر شبه تقدیری. ادامه حرف ناباور. از قدیم و تا همین الان بسیاری از مردم فکر میکردند که سرنوشت ما از قبل مشخص شده و ما توان گریز از این سرنوشت را نداریم. کسانی که چنین باوری داشته و دارند، گمان می کنند زمان مرگ یا به اصطلاح اجل ما مشخص است و نمیتوانیم از آن فرار کنیم. همچنین اینکه در چه زمانی و چه مکانی چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟ معین است و راه گریزی هم از آن نیست اینکه چه جور آدمی بشویم خوب یا بد از قبل برای ما تعیین شده است، طبعا این تقدیر از سوی نیروهای آسمانی و خدا تعیین می شود. مثلا در آیه 143 از سوره نساء گفته می‌شود آنها افراد بی هدفی هستند که نه سوی اینها و نه سوی آنهایم یعنی نه در صف مؤمنان قرار دارند و نه در صف کافران و هر کس را خداوند گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت باور به چنین شکلی از جبر از قدیم وجود داشته است مؤمن میتوان گفت که تعین یا دیترمینیسم در قرآن هم مورد تایید است. ناباور: نه اینطور نیست. جبری که در قرآن مورد تایید قرار گرفته و یا مردمان از قدیم به آن باور داشتند، جبر تقدیری است. در جبر تقدیری تو حتی اگر هم بدانی که چه چیزی برایت مقدر شده است، نمیتوانی از آن بگریزی. خاست تو و تلاش تو هیچ تأثیری در فرار از آنچه مقدر شده ندارد در این شکل از جبر ممکن است نیروهای آسمانی از تلاش تونیس در رسیدن به خواست خودشان استفاده کنند ممکن هم هست بدون توجه به تلاش و دست و پا زدن تو کار خودشان را بکنند تا آنچه خواسته همان شود یعنی قاعده و قانون دقیق و جهان شمولی وجود ندارد جبر تقدیری همان جبری است که میتواند مطابق خواسته ما و یا برخلاف خواسته ما رخ دهد. تقدیر میتواند علارغم اکراه ما اتفاق افتد. باور به چنین جبری ملازم باور به دست داشتن خدا به شکلی مستقیم در وقوع هر پدیده است. یعنی خدا میتواند در مورد اینکه این قنچه که در این گلدان است فردا باز شود یا نشود مستقیما تصمیم بگیرد پس اینکه باز خواهد شد و یا نه قابل پیش بینی نیست ممکن است برای رسیدن به آنچه که مقدر کرده است فردا امر کند این قنچه باز شود و ممکن هم هست که امر کند باز نشود در این دیدگاه قانون و ضابطه مشخصی بین پدیدها وجود ندارد و همه چیز در دست خدایان و یا نیروهای آسمانی است اگر کسی بخواهد تقدیرش را عوض کند باید دست به دامان همان آسمان شود. در این دیدگاه انشاءالله گفتن به معنای دعایی آن برای باز شدن این قنچه معنا پیدا می چرا که تو اگر همه شرایط حال حاضر را بدانی باز هم نمی توانی پیش بینی کنی فردا این قنچه باز خواهد شد یا نه زیرا نمی‌دانی. اراده خدا به باز شدن آن تعلق گرفته یا نه؟ در جبر تقدیری همه چیز در دست نیروی آسمانی است و خاست نیروی آسمانی هم قابل بینی نیست. آنچه مقدر شده تنها در علم الهی است. مومم قنچه داخل گلدان خیره شده بود. پس از چند ثانیه گفت فهمیدم چه میخواهی بگویی؟ تو جبر را به دو نوع ممکن تقسیم می کنی. یکی جبر تقدیری و دیگری جبر دیترمینیستی در جبر دیترمینیستی یا تعیینی قوانین و ضابطه مشخصی بین پدیده های پی در پی حاکم است و تو اگر از حال خبر داشته باشی می توانی آینده را به دقت پیش بینی کنی. از طرفی تو اگر چیزی را بخواهی یا نخواهی این خاست تو می تواند در بین سلسله پدیده ها قرار گیرد و در شکلگیری گیری پدیده نهایی تأثیر بگذارد و آنچه را که پیش بینی کرده این نیز تغییر دهد. در جبر دیترمینیستی خاست تو می تواند در آنچه رخ می دهد تأثیر بگذارد. اگرچه اینکه تو چه می خواهی و این خاست تو چگونه در شکلگیری گیری پدیده نهایی تأثیر خواهد داشت؟ همهگی از ازل معین است. ناباور دقیقا همین طور است. در جبر دیترمینیستی حتی اگر همه چیز مستقیمن مخلوق واجب الوجود انیمیشن ساز باشد قانون مندی بین پدیدههای های پی پی موجب می شود که حتی آن واجب الوجود هم نتواند را که از ازل خواسته است تغییر دهد. هر کس که موفق شود تمام اطلاعات لحظه کنونی را به دست آورد، می‌تواند آینده را با دقت پیش‌بینی کند. در جبر دیترمینیستی، گفتن انشاءالله الله به معنی دعایی آن معنا ندارد، و ضوابط بین پدیده است که معین می‌کند در آینده چه در جبر تقدیری، تلاش ما لزوماً در زنجیره علت و معلول ها مؤثر نیست. و هرچه مقدر باشد که بشود میشود و خاص و تقدیر خدا میتواند میل و اراده و تلاش ما را آمدان پس بزند و بی اثر کند. اما در جبر دیترمینیستی تلاش ما بخشی از زنجیره پدیده هاست و آنچه روی خواهد داد میتواند به میل، اراده و عمل ما هم مرتبط باشد. مومن حالا این چه ربطی به نتیجه گیری ای دارد که احتمال میدادند کوانتوم راه حلی برای اختیار داشته باشد. ناباور. پس از کشف قوانین فیزیک و پیش از شکلگیری نظریه کوانتوم بسیاری با مشاهده ضوابط حاکم بر طبیعت به این نتیجه رسیدن که امیال و اراده های ما نیز تابع قوانین فیزیک بوده همچون هر پدیده‌ای از قبل معین هستند و قابلیت پیش بینی شدن دارند ایشان این تعین را به معنی جبر دیترمینیستی گرفتند جبر دیترمینیستی یا همان دیترمینیزم تقریبا تنها شکلی از جبر بود که مورد بحث بعضی فلاسفه قرار می گرفت و قوانین جهان شمول فیزیک نیز به عنوان شاهد آن محسوب می شد اینکه آیا از پیش معلوم است ما چه میل خواهیم کرد و چه اراده خواهیم نمود یکی از دستاوردهای مهمی بود که بعضی فلاسفه به یافتههای علم فیزیک نسبت می‌دادند آنها ذهن و مغز ما را هم مادی و مشمول قوانین فیزیک می‌دانستند و تاکید زیادی روی آن داشتند از طرفی طرفداران آزادی اختیار نیز فکر می‌کردند که اگر به شکلی نشان دهند امکان دارد در سطح فرایندهای مغزی و ذهنی خلالی در دیترمینیسم باشد موفق به بازگشت به آزادی اراده می شود با یافته های تئوری کوانتوم و راهیابی اتفاق و تصادف در رویدادهای کوانتومی تصور می شود که خلال مهمی در دیترمینیسم پدید آمده است و اگر این رویدادهای کوانتومی در شکل گیری اراده ما دخیل باشند دیگر نمی‌توان گفت اراده ما از ازل معلوم است و این را راهی برای بازگشت به اراده آزاد می‌دانستند اراده‌ای که قابل پیش بینی نباشد مؤمن پس بالاخره راهی پیدا شد درست است ناباور نمی‌شود گفت که این راه می‌تواند وجود آن آزادی اراده‌ای را ثابت کند که مسئولیت همه چیز را به عهده انسان بیاندازد و مسئولیت واجب الوجود حذف شود. ممن، چرا؟ اشکالش چیست؟ ناباور. ببین وقتی که احتمال در سطح پدیدههای کوانتومی وارد می شود، به این معنی است که اگر در لحظه T1 الکترونی در مکان X1 ایک باشد، تصادف و اتفاق است که تعیین می کند. در لحظه تیدو، الکترون در کدام نقطه یافت شود؟ مومن، یعنی اگر ما مکان و سرعت و جهت حرکت الکترون در لحظه تی را داشته باشیم، نمیتوانیم به دقت تعین کنیم که الکترون در لحظه تیدو در کجا خواهد بود؟ ناباور البته به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، ما نمیتوانیم هم سرعت دقیق و هم مکان دقیق الکترون را در لحظه T1 به دست آوریم. اما گذشته از اینکه غیر ممکن است مکان و سرعت الکترون را در یک لحظه همزمان به دست آوریم، اصولاً جایگاه الکترون در لحظه T2 یک موج از احتمال است. یعنی گویی باجب وجود تو هم باید به قول آینشتین تاس بیندازد. تا ببیند الکترون را در لحظه تیدو در کجا بنشاند و یا در کجا خلق کند باوروی اینشتاین در نامه‌ای به رایکه در 1942 نوشت من هنوز باور ندارم که خداوند نرد بازی می‌کند اگر او می‌خواست این کار را بکند آن را به طور کامل می‌کرد نه اینکه بازی قمار را با یک طرح انجام دهد در این صورت ما اصلا مجبور نبودیم به دنبال قوانین بگردیم او در 1926 به برن نوشته بود مکانیک کوانتومی مطمئناً نیرومند است اما یک نیروی درونی به من میگوید که آن هنوز شیء واقعی نیست به هر حال من قانع نشدم که او یعنی خدا تاس بازی کند اینشتین تا پایان عمر حاکمیت شانس بر جهان میکروفیزیک را نپذیرفت ادامه مطلب مؤمن یعنی واجب الوجود هم نمیتواند بداند الکترون را در کجا به وجود خواهد آورد؟ ناآور. کاری نداریم که او میتواند بداند یا نمیتواند بداند. مهم این است که ظاهرا پدیده شماره یک یعنی الکترون لحظه t1 در مکان x1 علت تامه پدیده بعدی نیست. چرا که اگر بود فقط یک پدیده قابل پیش بینی بود. یعنی فقط یک مکان بود که الکترون لحظه t2 میتوانست در آن حضور پیدا کند در حالی که تابع موج شرودینگر میگوید مکان الکترون در لحظه t2 نمیتواند مشخص باشد و فقط احتمال اینکه حضور الکترون در چه نقاطی بیشتر است را میتوان به دست آورد این ربطی به اطلاعات کم ما از لحظه t1 ندارد خلاصه اینکه که ظاهرا در سطح کوانتومی رابطه علّی بین پدیده‌ها وجود ندارد و علیت به شکل دیترمینیستی آن یعنی آن شکلی که زنجیره علت و ها دیترمینیسم را ایجاد می‌کرد، میریزد. اینکه دانشمندان چه نظریه‌هایی برای حل این مشکل طرح کردند و آیا این نظریه‌ها کارآمد بوده‌اند یا نه، مورد بحث ما نیست. آنچه برای ما مهم است این است که با فرض اینکه تصادف و احتمال ذاتا وارد رویدادهای کوانتومی شود و دیترمینیست در سطح کوانتومی فرو بریزد باید قبول کرد که پدیده شماره یک نیست که علت پدیده شماره دو می شود بلکه پدیده ها رابطه یلی ندارند و زابطه دقیقی در سطح کوانتومی برقرار نیست. این یعنی اگر قرار باشد همچنان از حضور واجب الوجود برای توضیح چنین وضعیتی استفاده کنیم مجبوریم قبول کنیم که واجب الوجود تنها عنوان سرسلسله علتها را یدک نمی کشد بلکه علاوه بر سرسلسله بودن باید همچون یک انیمیشن ساز خودش هر لحظه دست به کار شود و رأسا تصمیم بگیرد که رویدادها را ایجاد کند واجب الوجود است که باید تصمیم بگیرد هر بار و در هر لحظه الکترون را کجا خلق کند البته چندان هم دستش باز نیست یعنی گرچه در مورد هر تک الکترون میتواند هر تصمیمی بگیرد و آن را هر جا که خواست خلق کند اما در مجموع باید بگونه ای در باره تعداد زیادی از الکترون ها تصمیم بگیرد که انحرافی از معادله موج شرودینگر نداشته باشد و برایند قرارگیری الکترون ها و ذرات بنیادین دیگر به ای از آب در که در سطوح بالاتر سطوح کوانتومی همه چیز دیترمینستی و زابط مند و قابل پیشبینی به نظر آید. مؤمن خب بالاخره مشکل جبر حل می شود یا نه؟ ناباور با فرض دخالت انیمیشن ساز به شکلی که اشاره شد تنها نتیجه این است که اگر هم امیال و اراده های ما از قبل قابل پیشبینی نباشند و از جبر دیترمینیستی تبعیت نکنند به جبر تقدیری محکوم خواهند بود. یعنی اگر اگرچه پیش پیشبینی کرد که چه چیزی را اراده خواهیم کرد اما هرچه اراده کنیم محصول خاص انیمیشن ساز است. حالا بیا به عنوان یک بازی فلسفی انیمیشن ساز را هم در سطح کوانتومی حصب کنیم. و با ذره بین اقراق به بزرگ کردن تأثیر پدیده های کوانتومی در جهان بزرگ مقیاس دست بزنیم و تصادفی بودن رویدادهای کوانتومی را به تصادفی بودن اراده ها تعمیم دهیم. خواهیم دید که باز هم فرقی نمی کنن. نتیجه همان است مؤمن چطور فرق نمی کنند؟ ناباور وقتی هیچ علیتی از هیچ نوعش در کار نباشد اگر معلوم باشد الان به چه میل دارم معلوم نیست که در لحظه بعد چه اراده خواهم کرد و آیا اراده من معطوف به میل من خواهد بود یا نه چرا که فرض کردیم اراده من محصول تصادفات سطح کوانتومی باشد و رابطه مستقیمی با میل فعلی من یعنی پدیده قبلیش نداشته باشد اراده من هر چیزی میتواند باشد همانطور که الکترون در هر جایی ممکن است خلق شود بدون ارتباط دقیق با اینکه قبلا کجا بوده است به عنوان مثال پدیده اول این است که میل دارم این چای را بنوشم اما پدیده بعدی که اراده من است به شکل تصادفی خلق می شود و مثلا من اراده می کنم که خودکارم را به طرف پنجره پرتاب کنم. می بینیم که جستن راه حل از دنیای کوانتومی نه تنها منجر به اختیار همراه با مسئولیت نمی شود بلکه منجر به شکلی لجام گزیخته از جبر تقدیری می شود. که اگر انیمیشن ساز را هم حذف کنیم میتوانیم نامش را جبر شبه تقدیری بگذاریم جبر شبه تقدیری از این نظر که در آن نمیتوان آینده را پیش بینی کرد شبیه جبر تقدیری است و از این نظر که واجب الوجود هم نمیتواند بداند چه چیز سر از قدم برخواهد آورد با جبر تقدیری متفاوت است در این نوع از جبر هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و همه چیز نه تنها از دست ما خارج است بلکه حتی از دست واجب الوجود هم خارج است مؤمن یعنی آن فلاسفه اینها که گفتی توجه نکرده بودند ناباور، نمیدانم، من فقط می‌دانم که آنها بودن دیترمینیسم را که حاصلش وقوع فقط یک انتخاب ممکن و قابل پیش بود به معنی عدم آزادی اراده گرفتند و نبودن دیترمینیسم را که حاصلش احتمال وقوع بیش از یک انتخاب ممکن و در نتیجه غیر قابل پیش بینی بود به معنی آزادی اراده گرفتند. شاید مسئله مسئولیت اخروی نظر آنها نبود. ما مسئله را از منظر موجه بودن یا نبودن روز جزا بررسی می کنیم. بنابراین احتمال وقوع بیش از یک انتخاب چیزی نیست که مسئله مسئولیت اخروی را حل کند بلکه شکل آفرینش آن انتخاب است که باید راه نجات روز جزا را در خود داشته باشد اما دیدیم که هیچ شکلی از خلقت نمی‌تواند توجیهی برای افسانه بهشت و جهنم و عقوبت الهی ارائه دهد به هر حال کوانتوم راه حلی برای بهشت و جهنم ادیان ندارد یا جبر تقدیری، یا جبر دیترمینیستی و یا جبر شپ تقدیری. راه فراری از این سه نداری. دوتای اول را می توانی جبر اللی بنامی، چرا که محصول علیت هستند. و سومی را می جبر غیر اللی بنامی، چرا که اگرچه محصول علیت نیست، اما به هر حال، راه فراری از آنچه به طور تصادفی و خود به خود ایجاد میکند وجود ندارد و مسئولیت هر آنچه چه ایجاد میکند با ما و با هیچ کس دیگری نیست در جبر تقدیری بین میل و اراده و عمل و نتیجه لزوما رابطه علی نیست و همه چیز توسط واجب و وجود انیمیشن ساز به شکلی بیزابطه ایجاد میشود علت همه چیز انیمیشن ساز است و هیچ چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. گاهی بعد از الف بی خلق می کند و گاهی بعد از الف چیز دیگری غیر از بی خلق می کند. با دیدن الف نمی توان مطمئن بود که بی به وجود خواهد آمد یا نه. در جبر دیترمینیستی یا تعیونی بین میل و اراده و عمل و نتیجه رابطه وجود دارد. اما همهی از ازل معین هستند و با علم کامل به زمان حال میتوان آینده را پیش بینی کرد. رابطه پدیده ها در این نوع از جبر میتواند اللی باشد و میتواند اللی نباشد. اگر واجب الوجود فقط در رأس سلسله علت و معلول ها باشد، رابطه بین پدیده ها است. و اگر واجب الوجود فقط به روش انیمیشن سازی، زابط مند عمل کند، رابطه پدیده ها اللی نیست، به هر حال همیشه بعد از الف، به خلق شود و با دیدن الف می توان به درستی به وجود آمدن به را پیش بینی کرد. در جبرش پتقدیری که البته آن را پیشتر با پرهان الیت رد کرده بودیم، پدیده ها خود به خود و بدون ارتباط با پدیده قبلی و یا با واجب الوجود سر از عدم برمیآورند. و نه برای ما معلوم است که چه پیش خواهد آمد، نه برای واجب الوجود. هیچ کس نمی داند که پس از علف چه به وجود خواهد آمد. آنچه به صورت خود به خود سر از عدم برآورد نمی تواند موجب مسئولیت و استحقاق جزا و پاداش گردد راه دیگری برای خلقت نیست. پس راهی برای فرار از جبر نیست و راهی نیز برای توجیه اقلانی روز جزا، وجود ندارد عنوان آیا چیزی بین جبر کامل و اختیار کامل برقرار است؟ مومن آیا فکر نمی کنی شاید چیزی بین جبر کامل و اختیار کامل برقرار باشد و امیال و اراده های ما انقدر ها هم که فکر می کنی جبری نباشند؟ ناباور یعنی هم ما مسئول اعمالمان باشیم و هم باجه کن وجود؟ بله ناباور با خنده گفت یعنی برای هر گناه 50 درصد ما مجازات شویم و پنجاه درصد خدا به هر حال در هر اراده و عمل ما او هم مقصر است مگر نه او نیز در خلق شر مسئول است و دیگر نمیتواند خیر مطلق لقت بگیرد در واقع این راه حلی نیست که به درد تو بخورد ناباور ادامه داد توجه داشته باش که ما سیاستمدار نیستیم که اما غممان این باشد حرفی بزنیم تا همه غم از جبری و اختیاری با دل خوش و راضی به خانه هایشان بروند و از سیخ بسوزد نکوان. ما فلسفی فکر می و می خواهیم معما را حل کنیم قرار نیست به کسی باج بدهیم تا رضایتش را جلب کنیم علیت یک نتیجه بیشتر ندارد و آن اینکه هر پدیده ای به طور تمام و کمال و نن اصف و نیمه مخلوق علتش است و اراده ما هم چنین است. اراده ما هم تمام و کمال پدیده است و مخلوق علتش می باشد. و ناباور هر دو دقیق سکوت کردند. ناباور یک فنجان چای را آهسته آهسته در حالی که به بیرون نگاه می کرد نوشید. فنجانش را توی نلبکی گذاشت و رو به مومن کرد و گفت فکر میکنی بس باید ادامه یابد برد؟ بله، البته من فکر میکنم شاید بتوان گفت خدا ممکن است به ما ازن داده باشد بتوانیم طبانیم و مستقل از او به انتخاب دست بزنیم او میداند که ما چه انتخابی خواهیم کرد ولی این اجازه را به ما داده تا بدون نیاز به او اراده کنیم ناباور ناباورانه به مومن نگاه کرد و گفت فکر نمی کنی آنچه گفتی با تمام مقدمه ای که در ابتدا برای علیت شرط دادی در تزاده است؟ تو گفتی پدیده به صرف اینکه پدیده است نیاز به علت دارد اگر پدیده هنوز نباشد و به وجود نیامده باشد چگونه میتوان به آن اجازه داد که خودش خودش را به وجود آورد؟ گفتی نمیتوان به عدم اشاره کرد. نمیتوان درباره عدم صحبت کرد. و درست هم میگفتی. اكنون میشود گفت که نمیتوان به عدم اجازه داد یا اجازه کاری را از عدم گرفت. عدم اصلا وجود ندارد. چه رسد به اینکه بتوان به آن اجازه داد خودش خود به خود ها به عرصه هستی گذارد یا نگذارد؟ مومن. من نگفتم خدا به عدم اجازه داده. من گفتم خدا به انسان اجازه داده که خودش انتخاب را انجام دهد. ناباور. آیا تو فکر میکنی منطقاً بتوانی مکانیسمی برای این مفهوم اجازه دادن از سوی خدا مطرح کنی که در آن حالت جدیدی خارج از قانون علیت سر برابرد؟ آیا فکر می‌کنی بتوانی به طریقی و با ترفندی رابطه بین واجب الوجود و یک پدیده را قطع کنی؟ آیا منطقاً میتوان حالتی را در نظر گرفت که بشود پدیده ای بدون دخالت واجب الوجود ایجاد شود؟ حالتی که در آن واجب الوجود نه در سر سلسله علت و معلول های منتهی به آن پدیده قرار گیرد و نه مستقیما و همچون انیمیشن ساز دست به خلق آن پدیده بزند توجه داشته باش که ما از آن رو دست به دامان وجود یک واجب الوجود شدیم که منطقاً به این نتیجه رسیدیم غیر ممکن است پدیده‌ای بتواند خود به خود و یا بدون ارتباط با واجب الوجود به وجود آید حال اگر تو بگویی که این امکان وجود دارد پدیدهای خارج از این قانون به وجود آید و این تنها نیاز به اجازه واجب الوجود دارد به این معنی است که تو قبول داری بدون واجب الوجود هم امکان به وجود آمدن یک پدیده و یا یک جهان و یا جهان های متعدد وجود دارد. واجب الوجود نمی تواند اجازه وقوع یک امر غیر ممکن را صادر کند. و یک پدیده را که به هر حال چه مستقیم و چه غیر مستقیم به واجب الوجود نیاز دارد از نیازمندی به واجب الوجود معاف کند. من فکر می که آوردن عبارت اجازه از سوی واجب الوجود تنها یک نوع بازی با کلمات است و نمی قانون علیت را بشکند. حتی اگر قانون الیت بشکند و واجب الوجود بتواند پایش را کنار بکشد، همانطور که قبلا گفتم، اراده و اعمال ما خود به خود و بدون نیاز به علت سر از عدم برخواهند آورد و باز هم ما مسئول به وجود آمدن آنها نخواهیم بود. پیشنهاد تو در مورد اجازه دادن واجب الوجود به انسان ها، و اینکه خارج از سلسله علیت و مستقل از واجب الوجود دست به انتخاب بزنند زیر مجموعه همان پیشنهاد یک مکانیسم برای دور زدن علیت و امکان دادن به اختیار همراه با سلب مسئولیت از خداست که پیش از این مطرح کردیم همانطور که بیشتر گفتم هر مکانیزمی که پیشنهاد کنی در نهایت مکانیزمی خواهد بود که باید در چارچوب علیت باشد ها خصوصیتشان این نیست که علیت را دور بزنند بلکه فقط شرح می‌دهند پدیده‌ها چگونه و به چه ترتیبی پشت سر هم قرار می‌گیرند تا پدیده نهایی ایجاد شود مومن درست است که محصول استدلال منطقی جبر است ولی ما جبر را وجدان نمی‌کنیم یعنی آن را حس نمی‌کنیم کسی که جب را اثبات می کند با پیشفرز اختیار زندگی می کند. با این حال اختیار که ما راحتی و با علم حضوری آن را میفهمیم قابل اثبات فلسفی نیست. ناباور بگونه ای صورتش را رو به روی کف دستش تکیه داد و به مؤمن نگاه کرد که نشان میداد داد از چیزی سر رفته و دیگر انرژی ادامه دادن ندارد. مومن گفت چرا اینطوری نگاه می مگر جز این است که میگویم؟ گویم؟ ناباور گفتم که منظور از جبر جبر روانی و احساس اجبار و اکراه نیست. وقتی سلسله علل و یا انیمیشن ساز و یا تصادف و یا هر علت بیرونی دیگری پدیده من دارم. و من اراده میکنم و من انجام میدهم را میسازد مسلم است که در چنین شرایطی من باید اختیار را وجدان کنم و با تمام وجود حس کنم که میل میل من است و اراده اراده من است و عملم هم مطابق میل و اراده ام بوده است در هیچ از اینها نباید هم جز اختیار را وجدان کنیم اصلا اختیار یعنی اینکه من میل به علف دارم من اراده به انجام الف میکنم من عمل الف را انجام میدهم جبر علی میگوید هر سه این منها مستقیم یا غیر مستقیم توسط واجب الوجود به وجود میآیند بنابر نتایج برهان علیت اینطور نیست که واجب الوجود فقط میل مرا خلق کند و لذا من نسبت به میل احساس بیگانگی کنم بلکه این طور است که واجب الوجود یا طبیعت و یا هر اسمی که روی آن میگذاری من میل دارم را خلق می کند. یعنی آن نفس یا من یا آگاهی را که در حال میل داشتن است خلق می کند. بنابراین تعجبی ندارد که تو هیچگاه نسبت به میل خودت احساس بیگانگی نکنی و آن را تحمیلی از بیرون نپنداری. مراقب باش که کاربرد یک لفظ به دو معنا تو را به اشتباه نیندازد. باری اگر همینطور طور شود تو تنها کسی نیستی که این اشتباه را مرتکب می شود. زیرا تقریبا تمام متفکرینی که مخالف جبر علی هستند اصرار عجیبی نشان دادهاند که در بین مباحثاتشان از معنای روانی جبر استفاده کنند و آن را به معنی اکراه و انجام کاری خلاف میل باطنی بگیرند و سپس بگویند که چون چنین نیست پس جبر منتفی است. مؤمن خسته شدم اجازه بده تا هفته بعد به همه آنچه تاکنون گفتیم فکر کنم ناباور پس تا هفته بعد گرامیان همینجا در صفحه 144 فایل آوایی سیزدهم از کتاب برهان الیت پایان پیدا میکند تا درودی دیگر بدرود